کماویش از زندگی بی بار من با جوانان همسن خودم در مدرسه هنرهای زیبا بیخبر بود. اما عقیدهش این بود که اینها ها گذراست و کسی که بخواهد زن او بشود باید این مراحل را گذرانیده باشد. از این جهت خاستگار من بود که تصور میکرد من زن با هستم و میتوانم گلیم خود را از آب در بیاورم. من میتوانم از کلیه شعون و ثروت و مقامی که او در اختیار من میگذارد حداکثر استفاده را بکنم و کمک من در کوشش های او مفید خواهد بود. تصور می کرد که من زن جا افتاده و استخانداری خواهم بود و اراده من وقتی پشتیبان دوندگی و آمال او شود دیگر هیچ قوهی در زندگی نمیتواند در برابر ما مقاومت کند. روک و راست به من می میگفت با من زندگی کنید. من در این دنیای آشفته درهای بهشت را به روی شما باز می کنم. هرچو بخواهید، سفر، تجمل، احترام، پول، جواهر، خانه، پارک، بیش از آن چه تصورش را می کنید و با وفاترین اشاق می توانند به شما ود بدهند در اختیارتان خواهم گذاشت. از هوسهای من نه آنها دمدمی و گذران هستند. اما من و شماییم که میمانیم وقتی قضیه گرفتاری مأمورین پست و تلگراف که نامه را منتشر کرده بودند پیش آمد رئیس نظمی را عوض کردند و شاه او را تلگرافی از پاریس خواست و ریاست کل شهربانی را به او واگذار کرد چند روز پس از ورودش به تهران به خانش رفتم لازم بود که من دیدنی از او بکنم از تبعید پدرم خبر داشت اما من هیچ اشاره‌ای به او نکردم مواد خیال کند که من برای نجات پدرم به دیدن او رفتم من او را خوب میشناختم و میدانستم که کوچکترین قدم را در زندگی بدون تقاضای اجر و موز بر نمی‌دارد. و من نمیخواستم زیر بار منت او بروم وقتی به بازی من آمد خودش موضوع تبعید پدرم را به میان کشید و گفت این کارهای احمقانه رئیس سابق است به علا حضرت همایونی جوری وانه مود کرده بود که اگر چند روز دیگر پدرتان در تهران می شهر به هم می خورد. در صورتی که چه کنم گفتم پدرم هم علاقه من نیست که به تهران برگردد اگر باید در تبعید باشد او را بفرستید به کربلا برای شما که فرق نمی کند منتها، من از این بابت از شما خواهشی نمی کنم. گفت شما امر بفرمایید ما همیشه در فرمان بوداری حاضر هستیم بنده هستم که هنوز در تغاظه خود اصرار دارم پرسیدم چه تغاظهی؟ گفت همان تقاضایی که حضرت علیه خوب می دانند. گفتم تیم سار. شوخی میکنید دیگر رئیس کل همه ما هستید و تمام دختران شهر آرزو دارند زن شما بشوند دوید توی حرف من بله منتها یکجانبه است آنها همه من رو میخواهند اما آنکه من میخواهمش مرا نمیخواهد گفتم تیم سارد دارید مرا مسخره میکنید گفت شما اینجور خیال کنید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 از پالاس آشپز خواستم و درست دور دادم شام حسابی تهیه کنند در مخارج به هیچ وشترف جویی نکردم شامپاین، ویسکی، جین، لیکور آماده کردم و اگرچه نظیر مهمانی هایی که او در هتل های درجیه که پاریس از من میکرد نبود اما با وسایلی که در اختیار داشتم آنچه از دستم برمی آمد کردم سرشام مادرم هم حضور داشت و گفتگوهای ما از آنچه در این گونه محافل عادی و معمولی است تجاوز نکرد. گاهی خاطرات فرانسه را مرور کردیم. از آشناهای مشترکمان صحبت کردیم. به مادرم شاهی در ستایش من گفت. رفتار او با مادرم در کمال ادب و تواضع راجب مسافرت مادرم صحبت کرد و خانم جانم گفت که هنوز آقا نتوانسته جا منزل حسابی پیدا کند و به محض اینکه نامش برسد حرکت خواهد کرد. پرسید تذکراتون را گرفته اید؟ مادرم گفت هنوز خیر. گفت می میکنم هر وقت تصمیم اتخاذ فرمودید به بنده فقط با تلفن خبر بدهید تا برایتان بفرستم. بعد رو کرد به من و گفت آن وقت من میمانم و خانوم هیچ به حال به خانوم والده استدای استدعای رو گفته اید بله خانوم جانم میداند مادرم از خدا میخواست این موضوع مطرح شود گفت ما هیچ کدام حرفی نداریم آقا جانش که از خدا میخواهد امیدواریم که خودش هم راضی شود کی بهتر از حضرت عالی؟ من خنده رو کردم و به او گفتم تیم سر. امشب تشریف نیه بردید که از من خواسته کاری کنید. خنده گرفت و گفت نه اما خیالش رو میکردم. شام تمام شد. من برخاستم و گفتم حالا این موضوع رو بگذاریم برای بعد. بفهمایید برویم قهوه را در سالن مید بفرماییم. آنجا میخواستم راجع به موضوع دیگری با شما صحبت کنم. فش را abrity rei فرا گرفت. مثل اینکه انتظار نداشت که من از او خواهشی کنم. او هم از جایش بلند شد. آمد به طرف من، زیر بازوی من گرفت و گفت: بفرمایید برافیم. خانم تشریف نمیآورند. مادرم گفت: نه، من مرخص می شوم. از مادرم خدافیی کرد و بازوی مرا گرفت و گفت: هر امری بفرمایید اطاعت میکنم. حتی نشنیده حاضرم تقاضای شما را بپذیرم. گفتم تیم خیلی خوشحالم. من جز این انتظاری نداشتم. یکی از پیش خدمت ها را صدا کردم و گفتم قهوه و لیکور بیاورید به سادن.